در کتاب حدیغت و شیعه غیاهین و شریعه غیاهین و شریعه، جلد اول در بخش حالات از زهره و سلامون ها، این نهر شد جبرایی نازل شد بر پیغمبر یا رسول الله سلام به فاطمه برسان خدا به فاطمه سلام میرسند و میگوید از فاطمه بپرسی این همه که عبادت میکنی چی میخوایی هر چی میخوای بهت خدا که میدونه فاطمه چی میخواد. هم میدونه فاطمه چی میخواد. خدا میخواد هم فرشته ها بفهمند درس بگیرن، هم به گوش ماها برسیم ماها درس بگیریم. پیغمبر اومد زهرا جان، جبرائیل اومد و گفت خدا سلام میرساند. میگه این همه عبادت میکنین، نماز میخونی، چی میخواید؟ هر چی میخوای بهت بدم. یه مقدمه بچینم جواب از زهرا سلام الله رو بگم چون ایام ایام بستری بودن فاطمه زهرا سلام علیه هاست دید یک هفته از شهادت پیغمبر گذشت دو سه روز بعد از رحلت یا شهادت پیغمبر حمله به خانه فاطمه زهرا آغاز شد و بیماری و بستری بودن حضرت دیگه این پنج روز یا نوید و پنج روز دوران بیماری و بستری بودن و عوج حزن حضرت زهرا سلام الله ها از یک دیده لذا امشب دلم میخواد که از حضرت زهره سلام الله ها یک کمی با هم بگیم و درد دل کنیم این مقدمه را دقت بکنید شما یک وقت به یک شاگردی میگید که اگر خوب درس خوندید جایزه بد میدم یعنی بر مبنای دید اون شاگرد جایزه ارزشش از علم چیه بیشتر دیگه به جاذبه جایزه درس میخواد اما انسانی که یه کمی روش کرد یه کمی بالا اومد لذت علم رو چشید حل معضلات و مجهولات براش معنی پیدا کرد بهش بگید جایزه میدم البی آموز نمیخنده این جایزه چیه چه جایزه بالاتر از خود لذت علمی برای عشق خود علم من دارم علمی آموزم عبادت کنندگانم این گونه‌اند برخی لذت عبادت با خدا براشون معنا پیدا نکرده میگه چون بهشت میدن چون قضای خوشمزه در بهشت میدن چون کاخ زیبا در بهشت میدن عبادت میکنم اما فاطمه زهرا سلام الله علیها در جواب رسول خدا چی ارز ف... عرض کردند وقتی پیغمبر فرمود دخترم خدا سلام میرساند و میگوید این همه عبادت میکنید چه میخوای فاطمه سلام الله ها جواب داد پدر جان لذت عبادت پروردگار اون چنان مرا به خود مشغول کرده است که چیز دیگری موضوعیت پیدا نمی کنه که بخوام به طلاب خود خدا را از خود خدا می خوام